بسم الله الرحمن الرحیم جلسه پنجم کلاس فقه مقارن استاد معظّم زیایی نهم آبان ماه 1401 هم جنبه در واقع فقه معاصر داره سنب. سنب. هم تو فقه مقارن محل اختلاف هستش بین امامیه و اهل سنت بحث شبیه سازیه یا تو بطون عربی بهش بیان استنساخ یا تو لاتین کلونینگ همه به عنوان شبیه سازیه یا یه ذره اصطلاحی که امروزه به کار میده به عنوان مهندسی ژنتیک یعنی چی؟ یعنی تغییری ایجاد بکنن که از مجرای غیر طبیعی یا رشدی صورت بگیره از مجرای غیر طبیعی حالا این مجرای غیر طبیعی می کنیم گای با استفاده از امکانات خود طبیعت نوعش رو عوض میکنن گای و کمک می از امور غیر طبیعی تا یک چیز طبیعی تولید کنن حالا اینها ها ما می بینیم این شبیه سازی چند انواع مختلفی هم داره گای و شبیه سازی گیاهی و نباتی تو گیاه در واقع مثلا بیان اونقا اصلاح نجات بکنیم مثلا یه هندوانه رو تایید که مثلا تخم دیگه نداره تخم نداره یا رنگ این مثلا قرمز نیست یه رنگ آناناسی میشه یا به جای گرد مکعبی بشه یا یه طعم دیگه بشه این پیوندهایی که میزنن در واقع اصلاح نجات میکنن یا تو حیوانات مثلا میان یه بوزی درست میکنن در محیط آزمایشگاهی مثلا نطفه نر و نطفه ماده در یه محیط آزمایشگاهی پرورشش میدن مثلا یه بوز خاصی رو در واقع اینها در واقع متولد میکنن در محیط آزمایشگاه گاهی ممکن داره نه به صدا رحم اون جنس ماده باشه اما اون به صلاح تخمک گذاری هایی که شده اون نطفه نرینگی و مادینگی نوع دیگری در واقع یا اصلا از اصلا از که یک پوست میان یه نیا جدا میکنه خلاصه یک عملیات غیر طبیعی صورت میگیره طبیعیش اینه که چه در گیاهان چه در حیوانات یه لباهی صورت بگیره چه لباه گیاهی چه لباهه حیوانی که از بین این تقابل در واقع مثلا تو حیوانات جنس نر و ماده، مواقعه بین نر و ماده یه مثلا بچهی به دنیا بیاد از این حیوان یا تو گیاه گیای رشد بکنه مثلا مثلا تشبیه بکنم براتون مثلا دو مدل پرورشه یا مثلا هستش یکی میان یه رو میکنن تو زمین به علاوه طبیعی اینه دیگه آب میدن، کود میدن، نور خورشید، همه ابر و بادومه و خرشید و فلک همه میان تا یه گیاهی رشد میکنه درست؟ اینجا. یه چون دیگه هم سلامه بس قلمه زدن دیدی تا قلمه زدن رو مثلا یه درخت مثلا توتی هست یه شاتو طبیقی دیگه از قشن یه آداب خاصی داره من هم دیگر میان برشی میزنن، یه سبک خاصی برش میزنن و چوبا جدا کنن پوستش بمونه میزنن با نخم میبندن یه دفعه میزنن یه می درخت این شاخش توت سفیده این شاخش توت قرمزه یا تلویزیون یه بار نشون میداد یه درختی پنشیش مدل مودل میوه داشت میداد یا بسیاری از درختها مثلا پایش میان اما این درخت سنجد پایش ولی بالاش مثلا درخت توت چراسه این تغییرات در طبیعت دیدن گیاه ها یا اصلا یه گیاه جدیدی خودشو تولید میکنن یه گیاه جدیدی تولید میکنن یه سبزی جدید تولید میکنن به اینها همه میگن شبیه استنساخ یا کلونینگ درست شد حالا انواعش گایوها در گیاهان و نباتاته گایوها در گای گایوها در انسانه که ما ستاشو بررسی کنیم که از منظر فقه امامیه چیه؟ جایز است یا جایز نیست از منظر فقه اهل سنت چیه جایز است یا جایز نیست که تو این بحث مباحث غیر فقهی هم دخالت پیدا کرده حالا در ادامه بحث ببینیم مثلا از منظر اخلاق بهش نگاه میکنن از منظر کلام بهش نگاه میکنن از منظر روانشناختی بهش نگاه میکنن حتی بعضی از نتایجی که میگیرن جواز یا عدم جواز میبینی صرفا مبتنی بر به صلاح عدبیات فقهی نیست بیدید جای جایی دیگه کمک گرفتن برای سنان برای جواز یا عدم جوازش از جاهای دیگه کمک گرفتن پس حالا ما, ما نگاه از فقهیمونو شروع کنیم بگم چیه ببین از حضار فقهی ما یا دلیل بر حرمت داریم یا دلیلی نداریم اگه شما دلیلی داشتید برای حرمت قرمت شبیه سازی خب قطعاً باید میشه این عمل چی میشه؟ حرام میشه اگه دلیل پیدا کردی یعنی ما این در خلال بحث چه فقه امامیه چه فقه عامه دلیلی پیدا کردی میشم اما اگه دلیل بر قرمت وجود نداشت نتونستی دلیلی پیدا کنی براش میریم سرابه چی؟ اصالتال حیلیت اصالتال اعباهه میگیم این عمل دیگه عمل حرامی؟ نیست. ما دنبال دلیل برای وجودش که نیستیم که نیستش که چون پیشینه تاریخی این بحث اصلا نداره یه بحث نو نوپدیده نو به قول چیه مستحدث. مستحدث هست جز جزء فقه معاصره ولی ما الان چیکار کنیم بگیم چون ند ما سراغ اصول ما اصل اباحه تاکید رو روشن کرده اصالتال هلیه تکلیف ما رو روشن کرد پس ما یا دلیل بر غربت پیدا میکنیم میگیم حرام ها اما که دلیل به غربت بر پیدا نکنیم میگیم وجود نداره اینجوری میستش که ما سکوت کنیم و بشینیم میدونیم سراغه اصالتال اقواهه و اصالتال بگی هلیت ایتانچه در یه نگاه کلی یه نگاه کلی دارم میکنم ما ریز اختلافاتی هست کلیش فعلا نگاه کنیم نگاه کلی اهل سنت اینه میگه سازی یعنی اون اصلاح نجات اون مهندسی ژنتیک در گیاهان و حیوانات جایز مشروطه جایزه اما مشروط نکته داره میگه مشروط به چیه میگه آها یک باید تو این کار چی وجود داشته باشه مصلحت یعنی اگر تو میای مهندسی ژنتیک دست بیزاری تو بحث هوزه گیاهان باید مسلحت داشته باشه اگر دست بیزاری و هوزه حیوانات مثلا بوزه اصلاح شده میخای درست کنی تو آزمایشگاه گوسفند نمیدونم گاو یا مدل ده باید توش چی باشه مسلحت اینجا دره یه آلارمهایی بتون از اهلسنت و اموری که هفته قبل خوندیم که مقاصد شرعی داره میگه اینجا چی داشته باشه مسلحت دو عدم مفصده کارت مفصده هم نداشته باشه اینجوری نباشه که تو بگی مثلا مسلحت داره اما یه کنارش داره می نه مقصده هم نباید داشته باشه سه عدم ضرر برای حیوانات امکان داره شما بیاین مثلا نسل گوسفند رو میخوای یه اسلام ها برای اصل گوسفند زرار داره میگه در جریان نگاه کلی حل بین گیاهان و حیوانات جایز چیه؟ مشروط یک وجود مسلحت دو عدم وجود مقصده سه عدم زرار برای حیوانات یا تو گیاهان عدم زرر برای طبیعت برای چی؟ شما مثلا میدیم آقا درختان رو مثلا همه رو تبدیل بکنی به درختان مثلا مسمر مسمر آقا خب درخت طبیعت بعضی ها اگه بخواد ما الان تو اینجا مثلا طبیعت به چی نیاز داره؟ یه درختانی که مثلا سر به فلک بکشن سایه داشته باشن اون بوی بعضی گیاهان برای بعضی از گیاهان اینا یه اثرات طبیعی داره شما بیاید همه رو به درخت چی بکنیم؟ همه رو گلاس آه گلاس شما گرونه همه بشه درخت گلاس خب این زمن طبیعت طبیعت حالا توی یه جدیه یه استندال دیگه هم دارن اینها نیازمند این تنوعه گیاهیه علایق و نیازه مثلا اگه بخوام دستم یه zarar بده پس این نگاه کلی حالا تو انسانیش به ما که جایز هست باوجود جا. اینکه حالا اهل سنت و مختلفتون مبانی فقهیشون با هم تفاوت زیادی دارن این الان نگاه خود مذهبی یا خود یک نهاد ببینید این نگاه فوقهای همه مذاهب تو اینجا اختلاف خیلی ریز بینشون هستش یعنی تو شرط و شروط با هم یه اختلافی دارن حالا ارز کنم خبعتون مثلا اینا میان تو این شرط ها رو برنزی میگن اما این شرط یه دشمال یه شرط بیضاقی هم یعنی جواز رو قبول دارن مثلا میان این شرط میزنن با زوابط فقهی تعارض نداشته باشن اشتایب آبا اشتایبشون بسته این که اون موقع نبود همه ایچی رو کشتر اونا ها اصول عملیه که دارن یعنی اینشون بسته نمیارن هرچون احوال نعل و اینا ها ها الان اجتهاد در مذهب رو که جاریه اینا مشکل نداره الان بذارید دو سه رو بگم بهتون الان کنم خدمت شما مثلا این بیانیه شون بخونم براتون یه بیانیه نهایی دهمین نشست مجمع فقه اسلامی اینه میگه استفاده از تکنیک های شبیه سازی در عرصه میکروب ها و دیگر جانوران ذره و گیاهان و حیوانات در حدود ضوابط شرعی مجاز است این اومده یه بیانیه دکتر قرضاوی اون یکی میگه شبیه سازی در حیوانات مجاز است مشروط به چی؟ ایشون میاد دوره یه سوری شروطی بر خودش میذاره میگه مشروط به یک مسلحت واقعی داشته باشه نه مسلحت پنداری و توهمی حقیقتا درک مسلحت بشه یک شب دو میگه که این مقصدم هم نداشته باشه این مصلحت و مفسد داشته باشه یا نداشته باشه ایشون میاره دال انسان میکنه یعنی میگه برای انسان مفصده نداشته باشه برای انسان مصلحت داشته باشه و شرط دیگه که ایشون میذاره اینه که برای حیوانات عدم zarar برای حیوانات پس ببینید تو کلان بس تو نگاه کلی همشون جایز می‌دونن بله بعضی هم هستن تو قسمت خوب دقت کنید تو. ما اینجوری می‌گیم منج دو تاشو گفتم بعضی از اهل سنت تو حیوانی فتوای به عدم جواز میدن فتوای به عدم جواز یعنی تو شبیه‌سازی حیوانات فتوای به عدم جواز میدن حالا چرا عدم جواز میگه که تو حیوانات در واقع این نوعی دست بردن به نظام خلقته یه وقتی حیوان رو شما بینید سراغ شدید سازی سراغ حیوانات یعنی شما اومدیم نظام خلقت رو دست کردی. دو همون تنوعی که کردم بیا وقتی شما حیوانات رو دستکاری کنی دستکاری اون تنوع آفرینش حیوان رو شما به هم زدی یعنی میگه اون چه که شما نیاز داشتی خدا به شما رو داده حالا شما یا یه چیز جدیدی می‌خوای درست کنی یا اونی که هست رو می‌خوای توش چی بدی تغییر بدی مثلا خرید درست کنی که شاخ داره درست چی؟ چه آره میگه شما اون تنوع آفرینش که خداوند متعال بر مبنای اون خلقش رو مهندسی کرده با این کار شما نظام خلقت به هم بخوره. لذا میگه در بحث حیوانات جایز نیست بعضیشون هم دوره همین فتفا رو دادن پس بعضیشون هر دو رو جایز بیننن که قالبن هم نیجورید بعضیشون تو جریان حیوانات اومدن در واقع این زدن از این بالاتر نکته جالب این که اگر یه گوسفندی رو خوب دقت کنیم از طریق شبیه سازی و آزمایشی بزرگش کنن به دنیاش بیارن چی؟ آره حالا مسئله فکری اینجا می آیا این گوسبند رو در عید قربان حاجی می تونه قربانی کنه یا نه؟ اهل سنت میگن نه میگه نمیتونه این گوس میواد گوسبند تو قرفم یوسم ما به گوسبند میگه نه میگم گوسبندی که برای قربانی است بعد بر اساس نظام چی باشه خلقت چون این گوسبند بر مبنای نظام خلقت تولد پیدا نکرده در واقع خلق نشده لذا قربانیش میگه این پذیرفته نیست اسکریلی تا اونجا پیش رفتن که قربانی رو در واقع قبول نمی‌کنن میگن حالا به قول خودمون گوسفنده چیه بی اصل و نسبه یه گوسفند آره. اصل و نسبه اصل و نسبی دیگه نداره تو آزمایشگاه درست شده معلوم نیست مثلا گستر درمه چی رو دارش چی؟ این گستر شد درمه عراضی این تعبیرشونه این تعبیرشونه که این گستر برخلاف نظام خلقته یعنی نسبش اصلش آزمایشگاهی و آزمایشگاهی قابل قبول نیست سلام نه باید نهت کنه که یه گوزبند آره دا آره یه باشه که در واقع اون باشه که بر نظام خلقت باشه خب اینجا اینجا حالا بیاریم سالا به اینجا اینایی که جایزه خب گفت جایز مشروطه به اینها ادنه اومدن دلیل جهاز و نکته دیگهی بیام میکنن میگن این که ما میگیم جایزه و مشروطه به این مفصله نداشته باشه، مسلحت داشته باشه یه نگاه دوره بازتره میکنن میگن میدونید چرا ما میگیم شبیه سازی یا استنساخ به عربیش میگن استنساخ این جایزه میگه ما مراجعه میکنیم به آیه 20 سوره مبارکه یه لقمان سوره مبارکه لقمان سر خرق. خدا. زمیر سخره میکره کی خدا. برای شما. شما. این ما چه ماییه دوستان؟ ما موسوله سوله. موسوله جز کدوم هدواته. آمه دیگه. ما. یعنی... همه چیز همه چی. آفرین. مفید عمومه. سخره برای شما. یعنی مسخر کرد خدا برای شما. مسخر کرد میده. یعنی چی؟ یعنی در اختیار شما قرار. سلام س... بله. در اختیار شما قرار داد خدا چه چیزی را مایموزلو ورده؟ هر آنچه که در آسمان و هر آنچه که در زمینه میگه آقا پس دلیل اینکه که ما میگیم این کار جایزه مسخر بودن امور به دست انسان البته البته ما میگیم تو میتونی شبیه سازی کنی و مسخر هستن همه امور به دست تو دوره اینا همه چی دارم میگم از اقل سنت ها همه چی دارم میگم از اقل سنت ها. اینا میگن به شرط اینکه یک. تو اگر میری سراغ اصلاح نجات گیاهی مهندسی جنتیک گیاهی میری سراغ مهندسی جنتیکی حیوانی اصلاح نجات یه چیزی خود تولید کنی تو آزمایشگاه سبب بیماری اینجور نشه, نشه. <تصفيق> نشه گستنش این بیماری باشه آره یه چیزی درست کنی مثلا حالا یه گستندی رو درست کنی الان ما گست مثلا گستنده که الان ما داریم دیدی آجد انگه خریده گستنده ای که میخور مثلا نصف به نصف گوش میده مثلا حالا شما یه درست کنه مثلا 90 درصد گوشت بده چربی هم مثلا نداشته باشه خیلی خوبه دیگه این گوشتی نیست گوشت گوشت نیست چی؟ آره گوشت گوشت نیست گیاهی سویا آره نه سویا نه به مثلا گوشت یا گیاهی نه گوشت گوشت سویا میان خاصیت چی داره گوشت حالا گوشت درست گوشت دیگه آره گوشت دیگه چیزیه باشه چیزی هم درست میکردن چی بود اسمش؟ آبوش. رو آتیش درست میکردن چیو؟ آفدین خوب یادت اون ها حافظه خودی آییفی کنه هاست همه درستان اونجا میکنم خب ببین اینا میگه حالا گوستندی رو میسازن 90 درصدش گوشت بدون چربیه اما اگه بخوره چی داره؟ آه. زرر می مریض دا. میشه بیماری میاره یا گایی اوقات بیماری نبره کسی که مصرف میکنه برای برا خود جانور مثلا این عمرش کوتاه میشه زجر رو میکشه گوشتش زیاد میشه ولی زرج رو میکشه سبب بیماری نشه این مرگاه مثلا یکی میشه مرگاه یه هزه خیلی گیرونی خانده اکیه کبد و اردکه همینجون هرمون روغن می‌خواد که هر دی بعدا این کبدش متورم میشه و می‌گوشه اون کبدش رو خیلی گونام می‌سوزن کبد یعنی اون جگر خیلی هم گونام واسه تو گذاشته این مرها هورمونیا همین اداره هورمونی آپول بزن. آپول می‌زننده چاهاشون چون نداره وایس از طرف از دست که شده و این قوا شده چرا چاوند میشه این دیگه مثلا این دو چیون میشه میدم به کشتار مقاله بود این برای پوست این خزه چیز روبایی اینا برای تبدیل پالتو و کلاه نه اینا رو پرورش می دادن این چاپ شده بودن که هم بدنشون لای لای بود اصلا نمیتونستن حرکت کنن این تو واقعا تو زد بودن کوس دارم شک بدن و اون بدن باید ازش کار کنه از دویی یه سبب بیماری نشه دو، آقا طرف شروع کنه به مهنده کار عوض و بیفایده است یعنی بیا آقای این کار بیگه م... زمانی تو بیتونی این کار که عوض و بیفایده نباشه اگر کار عوض باشه این یعنی همه شما فعالیت بکن حیوانه رو استانه کار فایده این نهشه یعنی بیواید یه مسلحتی فوقش باشه سب بومیش این جمال خلق الهی ظاهر نشه آ مثلا مرغ یه بیافه ای داره گوسفند یه بیافه ای داره انسان یه بیافه ای داره میگه اگه گاهی وباد مهندسی مهندس سبب این نشه که خلقت خداوند اینقدر زشت بشه که طرف تو خداوند یهو چی تو مثلا خلق کردی <تصفيق> یعنی میاد یه جوری اصرای نجات و مرغا رو یه شکلی بکنن پاهاش مثلا وقوام نیافته ما چی آفریده؟ خدا این موجود زنده رو اینقدر سنجر بکشه؟ زشت بشه مثلا؟ درست پس میگه این که ما میگیم مسخر امور به دست خداوند اینه که جمال خلق زائل نشه. بعضی عمر دوباره میگن با جایزه. می‌دونی چرا جایزه؟ میگه چون استمرار دنیا سبب این میشه که بعضی از گیاهان یا بعضی از جانوران به سبب انقراض برن ما برای اینکه پیشگیری بکنیم از انقراض جمعیت گیاهی یا جمعیت حیوانی میریم سراغ تکنیکهای شبیه سازی پس اینکه من میگم جایزه به دلیل اینکه من میخوام حفظ بکنم نظام آفرینش رو پلنگ. چی؟ پلنگ ایرانی پلنگ ایران درست شد؟ بیرون. اگه من اصلاح نجادو انجام ندم در واقع اینجوری بگیسم دلیل جواز حفظ سرمایه گیانی و حیوانی و جلوگیری از چی راز نابودی به علی مثلا بفرمایید درختای مثلا میوه میوه میوهلیسیان مثلا ویروس خوردن خلاص اه مثلا کلی پیدا زردالو چی خساره آره ها اون چیزی هنوز کنه طلب داشته خانون نگرفتن سال قبض هستن یا اینا رو <تصفيق> گیلاس خب مثلا آقا یه اتفاقی بیفته درختای گیلاس همه درنا خوش میشن. مثلا مثال ارزو می میگن آلبالو و گیلاس درختش باید دمای زیر سف رو حد دقل روز تجربه کنه یه قانون دارم که درخت آلبالو و گیلاس باید دمای زیر صفر در رو حداقل پونزده روز در فصل زمستان تجربه, تجربه کنه یه قانون میدارم شنیده بودید؟ امید. منم شنیدم و حالا به نگاه کنید بعد تجربه کنم حالا آقا دمای هوا طوری شده که مثلا تو شهر قم اصلا دما به صفر نمید. نمیرسه تو ایران اصلا بگم به صفر نمیرسه خب اینجوری سببه چی میشه؟ نابودی درخت مثلا این گیلاس میشه خب حالا میان, میان توش یه تکنیک شبیه سازی به کار میبرن یه تکنیک ژنتیکی به کار میارن این رخداد مثلا دیگه گیلاس نیاز نداره یا چون دریتو اچکان میکنی حفظ سرمایه آفتی میزنه گستنده همه از بین میرن خب این میاد تو محیط آزمایش که تکتیکش رو به کار میاره کشتر چیم؟ آره بلاخره میگن چون تو داری؟ حفظ سرمایه و ثبت و آخرین دکتری ای که این را بیان میکنن تو جرایان شبیه سازی میگن آقا شبیه سازی این که ما میگیم جایزه خب ببین مسلحت رو گفتیم مس... در واقع گفتیم. میاد یه جمله دیگه یه باعث اقتدار امته اسلامی میشه وسط تعقل بخون؟ رفت به قوم رازم مستت من میگه خب نشانه اقتدار حتما نشانه نظامی جلوه‌ای از جلوات اقتداره ادم آفرین یکی از جلوه هاش تکنیک شبیل سازی تو عرصه گیاهانه تکنیک شبیل سازی تو عرصه حیواناته لذا میگه این کار باعث اقتدار امت اسلامی به عمل کردن و رسیدن به آیه شست سوره مبارکه ای انفار وسط تعتم یادم بیره چرا وعد دوله وعد دوله و مسطط میگه این جریان باعث در واقع فرمایی اقتدار امت اسلامی میشه خیلی آره، اینه. خب. پس این نگاه اهل سنت و دوستان کلید واژه همه این مسائل که تو اهل سنت بود برگشت به وجود بهگی مسلحت و عدم بگید. مصلحه. آقا, آقا یه مثال مصلحت چیه بگید؟ حفظ یه مثالیش چیه مثلا؟ بفرمایید که اقتدار اسلامی پس این اهر مصاها مصلحت دیگه آقا مقصد نبود بابا بیماری چیه اینا است نظام نداشته باشه به هم پردن نظام جمال الهی جه مقصد پس اهل سنت تو این دو اسمی که حالا با نگاه کلیشون قبول کردن بردنش تو بحث مصلحت و مقصد و در نهایت این اقتدار رو هم بیان کردن ای بله چیزای جالبه میان آره گذاشون پای آره, بقید آره. اینا همه تو نشریات من اینا رو همه رو از مقالات جدیدشون کشف کردم یعنی درآوردم چند تا از اینی که دارم میگم ما حاصل دو سه تا مقاله زمین از دوستان اینا رو پیوند دادم بعد دیگر جای دیگه به تو بگین اینکه ای کتاب فرخی کوهنشون که نیست مقالاتی که به روز چاپ میشن رو براتون در واقع کنار هم شیدم که درست بشه یه خلاصه ای از پاک شام اینو دوستام رو. یا اگه. با من <تصفح> <تصفح> <تصفح> مشخص استاد این سخراله و خلق و ما افست ارض خب خلا تا این سخره نکرده که خیلی از دیوها تا در اعراض ما نیستن اصلا اخرام هستن با این آیه بر حلال و حرام مکتب بخاری مشکلی یعنی مگر حتما تلنگ ایرانی رو پا بخوری بشه. من در بخوری. با بخاری دوستا 90% که می خوام بخور اونم اونجا یه ذره تخصیص درنگ خب به شرطی که zarar نداشته باشه سخره مش ضرر ندازه ضرر نداره. زرار ند برای خیلیمانم برای نه مثلاً خوب وقتی دیگه موقعی میخنید خرماز کمالش اینه که ما استفاده از اون ببریم ما مشروط مسخره ما الان شما مثلاً نشید میگیم که خب نفس زب گوزفند ضرره بودی بوسفن گوزفنده ولی <تصفيق> ما که راه رو، ما که حوالون گوشتند به این <تصفيق> زحش. خب اینم <هم کمان> خلاف نظام خلقت برای گوشتند نیست. ولی ما یه گوشت 90% درست می‌کنیم. واش اشکالی همش می‌کنم، من خب ضرر داره؟ می‌خوام بگم اینجا سفره الکون هست ولی تو اون تو کجاست سفره نیست؟ چرا نیست؟ پلنگه. چون ما نمی‌دونیم استفاده. مگه استفاده کردم فقط برای مثلا خودمون خوردن خودمونه پلنگ نیاز طبیعته <تصفيق> یعنی ببینید اینجوری شما تو ذهن تصور بکن ت... تمام عالم هستی مثل یک پازله حالا این پازل گای در... اوز... پازل که درست کردی تو عالم <تصفيق> گای تو پازل می‌بینی یه نقطه پازل چشمه یه دونه دیگه مثلا اینو گوشه دومه بخاط بلاخره این پازل کامل بشه تا همه چی نیاز داره حالا شاید ببره برای شما برای من خورد و خوراکم ولی تو نظام طبیعت بهش نیازه خب خیلی از این چیزا هست انقرار میشه یا نیست اصلا به نظام هم ضربه ما نمیدونی منظون... خب اون ضربه ببینیم اون هفته یه چیزی اون هفته نه نه نه نه ببینیم من اون هفته من اون هفته یه چیزی به شما آیه من اون هفته یه نکتهی گفتم نکته قشنگی بودش گفتم که ما تو مباحث باید نقشه‌ی هوایی رو نگاه گفتم اینو جمله رو یکی دیگه این نقشه‌ی هوایی رو شما نگاه به من اینجا میشینم شما رو نگاه میکنم الان محیط من همین تیک است حالا یه نفر بره اولو ناکنم که هنینچه ساختمون بزرگیه چرا بایین؟ پس ما نقشه‌ی هوایی عالم هستی رو نگاه کنیم این قبول می‌خواهی؟ یه نونه میکروع هم تو رو بعد از اول خلقت تا الان هر کی حیونو در اندرو چرندو پرندو تا الان بوده. در واقع من یه مثالی براتون زدم. نوع آب و هوا یعنی نوع نوع نوع آب و هوا نیاز به اون داره تا اون زمانی که اون آب و هوا هست اونم هست. نباشه اونم میره کنار. اینا با هم رابطه‌ای علی معدولی دارن. خدا آقای ناسه امام لازمه کارشش یاد میگردم. تو باید عایز بیه. خوام خودش هست که دیگه بیاد. حالا آب و هوا دیگه خودشون میگه. این سال سال رفت. آب و هوا چه هم میشه؟ یا پاندا که مثلاً خب. بریم صلاح دوستان قسم ما گفتیم انواع شبیه سازی سنویه گیاهی یا یا گیاه هم نباتی. حیوانی اما انسانی تو اون دوره اول دید نگاه اهل سنت یه نگاه مبسوطی بود جایز دونستن قیدهایی زدن استفاده هایی کردن اما نسبت به انسانی من به این نمیتم تکرار براتون موضع رسمی اهل سنت من اه هر گونه شبیه سازی انسانی به هر دلیلی است پس چی تو انسانی یک میگه رو به هر دلیلی این موزه رسمی میشه میاد میگه این در نویسنده این مقالات اینجا نوشتن تو طنطاوی اون شیخ بزرگ الازهر اون عجیب غریبشون عبدل عزیز بن باز مفتی بزرگ اون عربستان دکتر قرضاویشون همه همه میگن سازی انسان حرام است درست شد؟ دوباره میاد ای اسمان رو بکنم براتون شیخ واسل ارز کنم شیخ سلیمان شیخ مختار ارز کنم عبد المعتی. نمیشه استاد دانشگاه اصول دین الازهر همه شبیه سازی و حرام میدونن همه هم یه دلیل دارن دوستان یه دلیل هفتهی گذشته یادتونه عدله یکی از عدله مهمونو برای رسیدن به احکام فتح زرایه و صد زرایه یادتونه زرایه گفتم چمه زرایه هست که منده چیه وسیله, وسیله. سد هم که منده چیه جلوگیری کردن یا شبیه سازی انسانی در واقع حرامه به هر دلیلی دل... چرا میگید حرامه یه سرته زراییه این یعنی چی؟ یا این چون مفسد داره چون مفسد داره ما هر چی اما مقدمه حرام بگید حرام مقدمه چه؟ ای این باچه می... اینو شبیه سازی دارم تو زیمتون میکنم اما اینا اینو نمیگن شبیه میگه آقا شبیه سازی شبیه سازی انسان مقدمه فعل چیه؟ حرام فعل حرام ترکش بگی واجب نتیجهش شو بگی شبیه سازی ترکش بگی واجبه یعنی فعلش بگی حرامه همه سدارشون اینه اون قیاسش این لفظ منطقی درست میکنن شبیه پس شبیه سازی مرانت خب شبیه سازی مقدمه فعله حرامه فعل حرام ترکش واجب پس شبیل سازی ترکش واجبه یعنی فعلش چی میشه دوستان؟ حرامش خب حالا مسئله تو شما که میای اینجوری میگید که اینه چه مدسده ای داره چه حرامی از مقدمه چه حرامی میشه که میگید شبیل سازی انسان مقدمی فعل حرامه این رو روش بحث کنیم که چه اتفاقی میافته؟ که مثلا یه نفر تو آزمایشگاه مثلا پروف ای رو از مرد بگیره مثلا حالا یه اصلاح نجات روش انجام بده در درون رحمه خاانامیک کار بذاره و حتی تو از شکم مادر بر برش به یا بکنه. یا اصلا کلن صد درصد محیط آزمایشگاهی باشه چه مشکلی پیش میاد؟ اینجا میگن خاه ما دسته ای از مشکلات آصد می نویسید یک. مشکل از نگاه علم اخلاق مشکل از نگاه علم کلام مشکل از نگاه علوم حالا روان بعدش حالا اگه تونستی از اینا عبور کنی تازه‌میا مشکلات چی روت میگن مثلا فهمیش رو روحت میگم اما از نظر اخلاقی این کار درست نیست اخلاقاً حرامه میگیم چرا حرامه؟ میگه مخالف با آیه کرامته لقد کررم نابنی آدم میگه وقتی تو میای انسانی رو میخوای درست کنی که در واقع از نطفه مر بگیری بعد روشی عملیاتی انجام بدی بعد خارج از اون میشه ببخشید خارج از اون سیستم در واقع لقاه انسانی این رو کشتش بدی بارورش بکنی اونو کرامت انسانی از بین میره این نقض کرامت انسانه این از این. آقا نقض کرامت انسانی یه زنه بیشتر توضیح بده ادبیات جدیدی هم برای اونا هم مطرح میبن. میگن آقا در واقع شما با این کار اومدی شهروند درجه دو داری درست میکنید یعنی انسان ها میشن؟ دو دسته یک مجموع انسان هایی که به روش طبیعی متولد شدن اینا میشن انسان های درجه یک مثلا میخوان مرجع تقلید میباید درجه یک باشه یا امام جماعت درجه یک باش یا شاهد درجه یک باش یا مثلا میخواد بیاد تدریس کنه ها درجه یک باش یا میگه شما با این کارت میری سراغ انسان های درجه دو که کرامتشون پایینه میگه مثلا آقا کارگر خواستی؟ بیا ما کارگر آزمایشگاه انسانه آزمایشگاهی بهت میدیم اینا اینا تو محیط آزمایشگاه باباشون معلومه کی بوده؟ نه حالا این اجاره ای آره، ازدواج مغرییتششون کرد در واقع تولید انسان های درجه دو حالا برگردون بکنیم به زمان قدیم مثلا داری شما درست میکنید؟ ابدو همه داری درست میکنید. شما با تولید در واقع یا شبیه سازی انسانی اصلاح یا تغییر ژنتیکی در انسان میایید دستکاری می و ناخواسته اومدی بفرمایید که همین انسان درجه دو طبقه یه کارگران طبقه حد اقلی درست کردی برای خودت ببینید تو علم حقوق دوستان تو کشورهای مختلف گفتم حقوقش هم متفاوته دیگه مثلا تو آمریکا به کسی میگن شهروند تو دقت کنید اون خیلی قشنگه شنیدی dont تکراره براتون به کسی میگه تو آمریکا شهروند که تو اون خاک زنده شده باشه متولد شده باشه یعنی ملاکش خاکه مثلا میره تو ایتالیا نه یه ملاک من خونه خون ایتالیایی ایتالیاییه یعنی اگه ایرانی بچهش رو اونجا به دنیا بیاره تو خاک اونجا متولد شده ولی خون اونجا نیست شناسنامه ایتالیایی شما بعضی یه بچه شناسنامه میاد آمریکا به دنیا بیاره چون تو خاک اونجا متولد میشواد شناسنامه و شهروندی چی میشه آمریکایی میشه مزایای اون رو میگیره حالا این یه کشور اروپایی میگه ملاک من چیه خونه حالا زد تا بچه هم اونجا ببرید به دنیا بیاری فایده ای نداره حالا مسئله تو این جریان ملاک خاک باشه خون باشه کدومشه ملاک اصل نه خاک اینجا نه خون خون یعنی اون دی ان ای اون نطفه اون کروموزوم ها کروموزوم های جنسی غیر جنسی اون انواع کروموزوم که وجود داره خب اینجا که ما دستگاری کردیم، از شما بروی خونه. خاک تو گنده کنیم؟ آه این که اصلاً واقعیت تو یخ دنیا دنیامه؟ اصلاً که در رو هوا بوده از منشور هواایی بوده به در تو بیمارستان هم بچه رو زنی خاک منظورش نه که رو زمینه؟ مربی متوجهت خاک کشور این هم دفتر کشور می‌دانی؟ سلام, سلام. به کار اون نیشه زن ماشین زن. خب. نیش کلیسای شیم نداره نه. آره. خوبه شوی سامان. خوشحال شدم زیاد می‌کنم. خب. پس. شما فهمیدید خاطر از خوشحال شدم گفتم آجام تو ذهن هست؟ بله و حالا بعدیش هم بگم آره, آره؟ <تصحيح> <تصحيح> تحلیل جدیدی مگه رسیدی بهش خب بعدی همیشه, همیشه همه چه تحلیل هست این نفذی دید خب پس ببینید توی اینجا خاک و خون شما ملاکی باستش پیدا مذور از خاک که تولد پیدا کرده باشه به روش طبیعی این تولد به روش طبیعی نه این میسا منظور که تو بدن مثلا امریکا یا کانادا به دنیا بله میدونم من... میدونم ایران دنیا یا یا آره ما این روشا بیات میتونیم بیدونن. ایران نمیدن. حالا ایران رو در ایران... پس این, از این. پس این میبره تو بعد اخلاقیش که عز کردیم مخالف کرامت انسانی درست کردن انسان درجه دو این که نمیدونی چه هویتی بهش بدی هویت آزمایشگاهی هویت جدیدیه مخالف اون خون و خاک و ایناست اینو نمیدونی دو. اشکال بعدی اشکال بعدی، اشکال اخلاقی هم, هم داریم دارین ببینید شما با این بردن نطفه در محیط آزمایشگاه و کشت دادن اومدی تصرف مالکان ماله ایشون تصرف مالکان در انسان هستی که تصرف فقط در اختیار کیه بگید خدا, خدا. این جسم دوستان اینجوری بگم بهتون از این در بشن این جسم یه ودیعه است که خداوند در اختیار ما گذاشته یه امانته پرست و به روش طبیعی باید استفاده بشه ولی تو این اصللاژیکی مثلا تیکه از کلیه رو بر داره تیکه ای از مثل پوست بدن و برداره به تصرف داره میکنه دیگه نه اینکه برای درمان من باشه یا برای درمانتلویشه عمل جراحی پزشکی برو سرراب خودش برمیداره مثل بر یه عملیاتی روش انجام بده خ تو این چهرست که مالتون نیستش که این یه است یه امانت به دستتون تو تصرف نمیتونی تو این امانت داشته باشی در واقع این دوره مخالف بشه با اون کرامت انسانی این نگاه اخلاقی و از همه که شما بخواید تو از جسم انسان تصرف کنید تو جایی که مثلا شما بخواید تو آزماجدار انسان رو درست کنید اونجا انسان وجود نداره که تصرف کنید و از اون اعواد آزمایشی هم هست که اونای سخر و ماف سماوات و درخت خونسداده خودشون شما این میتونید در این مواد استفاده کنید و یک موجود جدید رو خلق کنید ببین تو شبیه‌سازی میگن خب شاید یک سلول انسانی اول وجود داشته باشه یعنی بیسش پایش یک سلول انسانیه این سلوله رو بردن در اونجا یعنی تصرف مالکانه کرده. همین تیکش همین همین تیکش همین شما گفتن برای درمان, درمان ها نه درمان... درمان... درمان درمان ببینیم اون درمانه یه کار دیگه یه اون خود داریم یه جریان درمان ما اینجا شبیه سازی گفتیم استنسا یعنی یه موجود جدید درست کنه با این، این حالت رو پیدا میکنه و در واقع حالا دیگه بعض نکاتی گفتن استفاده ابزاری از انسان ها کردن و یا تو این جریان این نامونی مثلا تو بها تولید مثل رو بگیم شبیه در تولید مثل جنین های تولید میشه و سری از وین میره تو محیط آزمایشگاه امکان داره هی درست بشه از بین ببری یعنی خودت با دست خودت تولید جنین میکنی و از بین می‌بری میگه این دوباره با کرامت انسانی سازگاری نداره این مجموعه دلایل اخلاقی میاد تو یک کلام میگه با از نظر کلامی و به قول خودمون اصول اعتقادی ما هم با مشکل مواجهه یک دو سه به توضیح بدم شما با این اومدی در واقع یک تحدی دو شبه خلب تحدی جردی یعنی چی؟ یعنی خداوند است که خلق به دست اوه یعنی خداونده که از پی اینها یه در واقع زوجین نر و ماده یه انسان میاد شما با این کار در واقع یه طعنه ای زدی به خداوند یعنی خدای تو انجام میدی ما هم تو آزمایشگاه برای شما انجام میدیم در واقع یه تحدی دو این شبه خلق شبه اجازه یعنی اون اجازه شما انجام میدی در واقع با این کار دوره از حذر کلامی با مشکل شما رو مواجهه می‌کنه و در آخر میاد میگه امکان داره شما تو محیط آزمایشگاه انسان به این شکله یک سر داره دو چشم داره یک دهان دو گوشت دو دست دو پا امکان داره انسانهای عجیب و غریب خلق کنید یعنی تغییر در بی خلقالاله مثلا انسان هایی درست میکنن که دو تا کله داشته باشن. انسانی درست میکنه چهار تا دست داشته باشه. انسانی درست میکنه سه تا با پا داشته باشه. انسانی درست میکنه که مثلا یه صورتم پشتش داشته باشه. میگه آقا اینی که من میگن دست نزن به شیه سازی در جریان انسان یعنی اون تکنیک‌هایی هایی که بردی رو تو انسان به کار نگیرید کار حرامه. حالا تو, فر... تو کلام نمیگن حرامه میگن چیه بگی؟ جبیه. قبیهه جایز نیست اون حسن و مثلا میگیم چرا؟ میگه تو با با این کارت اومدی خلق خداوندی که خداوند به احسن تقویم خلق کرده. یعنی قشنگر از این حالت نمیشده اگه میشد بگی خداوند خلق میکرد دیگه آیه رو بخونیم آیش بگید احسن تقویم آیش مم. لقد خلق لل انسانه احسن تقویم شو شما با این شبیه سازی با این تکنیک هایی که بکناری دخالت کردی در تغییر دادی نظام آفرینش انسان رو نظام میگه از نظر کلامی هم در واقع با مشکل مواجه میشید و ضمن این که دوستان یه نکته که دیگه هم تو ریشه در علم کلام داره هم در علم اخلاق داره اصلا آقا یه سنته آفرین سنته ازده از ازده میره من بچه میخوام وارس میخوام به جای اینکه که بره خاستگاری یه زن بگیره خرچ کنه عروسی بگیره برخونه بگیره جهاز نون آ، نبیدن قضا بچه‌ای بیاد نهمه اون بچه رو در شکم مادر در واقع نگهداری بکنه و لیلی به لالاش بذار آقا بچه باید بیاری اینو بخور اونو نخور. یه سفارش میده به کجا آزمایش باید محلشون تازه بگید بچهرم میتونه سفارش بدن. جان دختر میخوام کسر میخوام یه ولو میخوام دو ولو میخوام تموش. سلامت نیش باشی, باشی. آفرین دیگه سفارش برای بر زن بگیره که بخوا مننت زن رو بکشه و بچه و نمیدونم خرجش رو بده ولش کن آزمایشگاه محل سفارش بیده اینترنتی سفارش بیده من یه بچه میخوام پولش هم. در واقع از طریق اپایی که وجود داره پرداخت میکنه اصلا میشه که نعمه هم در انتظار بکشه امکان داره تو مادر تا در دفتر بیمار داره میمیره شاید اصلا اون کارمونه نوشته دو تا در با اون قاچاق آره آماده داره یه رنگی دفتر پوشش هماره داره آره مادره. آره مثلا الان بحث این که معنی رو میرن فریز میکنن دیگه نگه میدارن مثلا برای 10 سال دیگه 20 سال دیگه خب این بانک ها آره بانکش هست دیگه پر. خب این اتفاق مثلا میفته بیا این ترمید در خنابالالا و شمیده یه همه به کنار اون سنت ازدواج تولید نسل این در واقع با این کار از بین میره و اون تو گیاه هم گفتم اینجا جمعه بگم اون تنوع ما اومدی گفتید گیاه این کار نکن همونقدر تنوع گیاهی از بین بره تو انسان هم هم اینجوره خب اگه بره تو محیط آزمایشگاهی کشت بشه انسان همه رو میتونه یه سری بسازه سری سازی کنه چی میگن آهای شهروزی بیاد علی سری دوزی اینجوری نمیشه سری سازی همه پسر همه دختر همه کوتاه همه متوسط همه گندم گون همه سبید گون چی؟ آرس آفری آفر یعنی در واقع این میاد با این کار اون سنت تنوع رو از بین میبره پس اهل سنت اینکه میان میگنش تکنیک های شریع سازی اسفه دیگه شریع سازی چی تو عربی مقالش خاصی بخونی؟ استنسا انگلیسی کلونیم اینا ستاش یه چیزه این که میگن این کار جایز نیست چرا اهل سنت میگه این دلایل یه مشکل پیدا میکنه؟ اخلاقی با کرامت انسان، مشکل کلامی، تهدید و خلق و تغییر در خلق و سنت ازدواج از بین میره، تنوع از بین میره. آقا تازه همه اینا رو یک به جلو و رو بگیره بگیره میگه آما در واقع روان انسان ها برخواسته از اون اموریه که در دی این ای ها در اون سلول ها منتقل میشه از نسلی به نسله دیگه خوش دوستان خوش اخلاقی اینها بعضیاش عامل وراثتی ما الان میدونی که تو روانشناسی مثلا اگر یه نفر مبتلا اختلالی باشه مثلا طرف مبتلا اختلال اسکیزوفرنیه درست شد سایکوپاله مثلا خودمونی بگم دو قطبیه چیه دو قطبی دو قطبی میدونید چیه که شما باید. چی چی قطبی شما قطبی نه انسان دو قطبی انسانی که نوسان رفتار داره من الان میگم اول کلاس با شما میگم و میخندم آخر کلاس شیم رسل جو وضع دو دقیقه خوبه دو دقیقه بعدم امرو میام اینقدر شما کشورهش میکنم فردات تو خیابون میبینم فرهاش میکنن بهت دو قطبی آقا معامل دو قطبی چیه؟ چرا مزمی مبتلا به دو قطبی میشه؟ یه دوتا عامل میتونه داشته باشه. یک فراست دو محیط که که جهر راست داده این را خوب پلده محیط, محیط. مکارم فرامون محیط کاری نداریم بگه آقا روانشناسی میگه گویا تو وراثت اثبات بعضی از اختلالات میشه. اینجا بعضی بعضیا مثلا مطلع دو قطبیان میگه برو نگاه کن مامانش چه جوری بوده، باباش چه جوری بوده. با بزرگش. تو ببزرگش تو اونا ببین رگهای مثلا این اختلالات روانشناسی اونجا میگه ها با این کار شما علوم روانشناسی همش میره رو هوا. یعنی چیزی به نام وراثت دیگه نمیونه، چیزی به نام موهید دیگه. آها تو شکم مادر اینو دیگه روانشناسی اسلامی هم اینو میگن دیگه که بچه که در شکم مادر هستش اونجا تربیتش رو باید شروع کنی همونجا روح و روانش رو تربیت کنی خب آها اینجا دیگه هست محیط کجاست آسمایشگاه گاز؟ اصلا دیگه اون ارتباط وجود نداره که پس میگن از نظر اون روانشناختی هم با مشکل مواجه میشه راست فهمید تا وجود داشته شری احساس آره،, آره، آره چرا نداشته راستن آره. زیاده. مم. شما مثلا همینا که نطفه هایی که در واقع میگیرن از مردی که مثلا نازای درست مم. مثلا احساس برانش میشه بله دلستان آزمایش دلستان بله در محیط آزمایشگاه کش میشه چیزی بهش اضافه میشه، چیزی کم میشه بعد اون مطفه حالا یا تو محیط آزنش کن یا در رحمه مادر قرار میدن یعنی بیرون میگن، مرد به صورت طبیل نزدیک بشه، عمل در واقع انجام بده، اون نطفه باربر نمیشه ولی اون نظفه مرد، با اینکه توی رحمه مادر مستقی بارد بشه باربر بشه میان توی محیط آزنش که یه چیزی کم نکنه در سرکنک س توی ایتالیا الان دارن کار میکنن روی پیوند سر سر یک انسان رو به انسان دیگه پیوند بدن دارن روی این کار می‌کنن، این امکان امی‌کنن داره مرد بشه بشه دارن. حالا از یک وقتا نیست که ملوسته اتون بگم، خیلی شسته رفته الان این ترنس که وجود دارن می‌رن عمل می‌دونم اتا این عمل بحث کردی مرد بوده می‌شه؟ زن. زن بچه داره مادر بوده تا دو سال می‌شه الان شده بابا ارث این چی می‌شه؟ می‌کنه چیستش؟ ایزان حال خیلی اترازه ایزان حال خیلی بعد ای بمیره اب بچه‌هاش چه عرصی می‌برن؟ بچه بچه‌هاش چه عرصی می‌برن؟ بچه‌هاش بمیرن این اینا چیزایی که داره اینجا میشه در واقع اینا به نوعی ای... همه اینا بیده تو این اصلاح ارمان این مثلا شما این تخت دار رو نمیشتیم و پاک بکنیم صفیل میشه دوباره میمیمیسیم تخت سر جاشه دیگه این خط خطیه که رو این آدم انجامه ده این مرد مرد بوده حالا شکل زن بهش بدم دوباره زن رو برد بردنم مردش کنم این خط خطیه که این به برد و خیلی خطرخطر دیگه پارک میکنن یهو خودش خیلی خودشونو میقشن برا خودشونو ناقص میکنن خب عمل مرد بوده مرد بوده هر چه من آقا بحث و چه بمونه حالا نگاه در واقع امامیه چیه به این بحث و اینا ان شاء برای جلسات آینده و صلی الله علی محمد و حالت الطاهر